الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين مطلب مقدار مقدمات بود یا به اصطلاح برزن مباری تصوری بود که توضیحات اجازه شد و تقسیمات و صحبتهای متفردهی که بود شرحی نسبت مقدمات حکمت و چهار قسمی که در اونها تصور شده جزو مطلقه یکی اسم جنس و علم جنس و مطرد محلهای قلام و مکره مکره در مصبت اینه در منفی حاصل شد که این به عنوان مقدمات بحث بود و اما بحث اصلی که در اینجا در بحث مطلق و مقید مطرحه بحث حمله مطلق بر مقید البته شبیه مواضعه عام شواهد مثالیه مخ... مقید شواهد مقید اسم شواهد مفهمیه هم در مطلق و مقید میاد تخصیص یعنی تنوان مطلق به ضد به مناقض به نقیز اینها در اینجا میادن اما اینجا مطرح نشدن احتفای کردن به همون بحث که توی بحث عام خاص مطرح شد بحثی که در اینجا اساساً در بحث مطلب مقاید مطرح کردن بحث حمله مطلب و مقاید و از شد که از مسائل مطلق مقاید انسافان هم یک مسئله رو متعرض شدن مسائل دیگر رو تو بحث عام آیا مطلق همده برمغید میشی یا نمیشی این مسئله همده مطلق برمغید سابقاً هم بر اعز کردیم که داره و مراره. این بیشتر از مواقعه است که در در اصول راه پیدا کرد یعنی به اصطلاح از مسائل اصلی در اصول در بخش اول اصول که اصول به دو بخشه بخشش به مسادر تشریب کرده. این برمی‌گرده به زمان صحابه و بعد از پیغمبر صحبت و جد قیاس و اجماع از این هم یک بخشش هم برمی‌گرده مقام استظهارات اینها که اینا بیشتر به عنوان اصول از قرن دوم شروع شد اواخر قرن دوم به عنوان اصول اما قبل از اینکه به عنوان اصول مطرح بشه اینها در فقه مطرح بودن حتی ممکن بود در زمان صحابه مطرح باشه لازم نیست که در دوران فقه مستدل از همون اهل صحابه هم مطرح شد اون وقت فقط فرقش اینه که در اوائل فقط در حکم فردی به اصطلاح می آمدن فتحا می و بعدها به عنوان یک قاعده اصولی مطرح شد فرض کنیم مثلا در تفاره افتار ماه رمزان فرض کنیم اهل سنت یک اختلافی هم تو همون رباد هست در اینکه ترتیب نقل نشده در کفاره لیکن توی زهار ترتیب هست کفاره زهار خب اده فتوان می کفاره افتار ماهرمانزان هم ترتیب داره اده می کفاره کفاره افتار ماهرمانزان ترتیب نبود یعنی اون مسئله حمل مطلب بر مقاید ابتداعا در فقه به نتیجه فقه هیش بود نه به قائبه و یعنی اگر کسی می آمد می گفت کفاره افتار ترتیب درش نیست این یعنی همده مطلب و نکرد. اما اگه کسی می گفت که نه ترتیب در هم دو مطلب برمقاییت کرد و همینطور در موارد دیگه فرست کنید در کفاره زهار که در قرآن کریم آمده اتعام توی ذکر نشده ام ببخشم ذکر در کفاره قتل اتعام ذکر نشده در خود قرآن خب این مسئله از اول مطرح شد که اگه کسی در کفاره قتل متمکنه از اتقرقر نشود. آیا اتعام ستی بکنه یا نه؟ ادبه این بودن بله. درست اینجا در کفاری قتل به اسطلاح خودشون مطلق حکم اتعام نیامده اما چون تو کفاری زهار آمده اون حکم رو از کفاری زهار تو کفاری قتل نمی حالا اون حکم در کفاری زهار بود اتعام در کفاری قتل اتعام نبود اینا هم که فهم فرمان بکنه چون کفاره است از اونجا هم می به مسئله کفاره عهد لذان تأثیر بحث هم به مطلق و معید از عهد صحابه تا های مثلا سال 70 و سال 80 تقریبا بیشتر جنبه فقهی داشت بودم مسئله اصولی مطرح بکنم مثلا بعدی ها مثلا طرفداران ابو گفتن حنیف ابو حنیفه این فتاش این اینجا هم دو مطلق برهایت کرده شافه ای مثلا نکرده. لکی بیشتر اونی که در فقه مطرح میشد اون های فقهی بود. مثلا همین مسائلی که خدمتونا عرض کردن. و چون مسئله هم دو مطلق برهایت در خود قران هم موجود بود اینطور اون که فقط در روایات باشه. در خود قرآن هم موجود مثلا در یک آیه قرآن که تحریم آماده حرم کمون میتر و دم و لحم خنزیر به اینجا دم مطلق آماده حرم علیکمون میته و دم در جایی بیگه قولا عجل و فی ما او وی علی فی ما او وی علی محرمان علا هو امنیت اموهو اللا علیکمون میتتن او دمن مصفوها صف یعنی ریخته پاشیدن خون ریز هم که میگن به خاطر اینکه زیاد از بنی یک کشت خون خار بود و خونویز بود و اون صفحان بود علایانه دمن ها. خب اینجا این بحث پیش آمده که اینجا مقیده اون آیه اول مطلقه ارمه علیکمون و دم از یک طرف این مطلقه که دم مطلقاً حرامه از یک طرف این آیه مبارکه او دمن ها. دم رو مقید کرده به کلمه مصفو پس این مطلق نیست خصوص دم مصفو حرامه اما دمی که مصفوه نباشه، مثل خونی که در لابلای و عروق یا بدن داخل حیوان هست، حتی بعضی ها تسامح کردن ظاهر صاحب حلالت، که کادم از بازار میاری، مقدار خون رو بدنش هست، میگینم پاکه. میگه در مصفوه نیست، در که در وقت سر بردن. ازش جدا شده. این هم به اصطلاح حلال خوردن، اصلا پاکیش مسئله دیگه نیست. این هم حلاله. کسانی که مسئله پاکی تا به حرمت میگن می پاکم هست. البته مشهور فعلا بین فقهای ما تفکیک بین حرمت و نجاست قرار دادن. لكن خب غیر مشهور هم داریم که این دو تا رو ملازمه همدیگه میدونن، حرمت و نجاست. علایها دقت بکنید در خود قرآن کریم هر علیکم علیکوم میته و دم این مطلقه الا ان یکون میتها او دم مسفوها ای مقید. پس این بحث مطلق و مقیّد در فقه اسلامی منحصر به روایات نیست که تصوّر بکنید بحث روایات یعنی به عبارت دیگر در حقیقت از اهده اهدساهابه مطرح چون آیات قرآن دیگه و در نتیجهش این می میگفت در مصفو حرامه غیر مصفو اون میگفت نه حمل مطلق بر مقیّد نمی‌کنی در مطلقاً حرام اگر حمل مطلق و مقیّد شود خصوص در مسفو حرامه اگر حمل مطلق و معاید نکنیم دم مطلق حرامه مثلا بگیم دم مصفوح از باب تحکیبه حرم علق و اون و دم بیون که مطلقه اخذ اون اطلاقه پس بنابراین خوب دقیقه بفرمایید مسائل مطلق و مقاید جز مسائل بسیار است که از عهد صحابه مطرح شده و ریشهاش در قرآنه در روایات بعضی از شواهد روایش هم میخونه میش و لیکن در یکی دو قرن اول امعکاس این, این مسئله در فتوا بود بعدها دیگه در اصول به عنوان قواعد کلی مطرح شد قاعده کلی البته مثل هر علم دیگری در اصول هم اول به صورت مختصم بعد سیر بیشتری پیدا کرد تنویه بیشتری پیدا کرد خصوصا بعد از ورود مباحث کلامی و بعد از ورود متکلمی چون فلاسیفه بیرو اصول وارد شدن <تصفيق> بعد از ورود متکلمین بزرگ که اینا در این حال این رود متکلمین بزرگ هستن اصولی هم هستن در کتابهاشون در این, این که بحث های کلامی دارن و اصولی هم دارن مثل معتمد عبار حسین بس بسی و حیله مثل قاضی باغلانی مثل خازی عبدالجبار دیگران اینها اضافه بر اینکه که متکلم بودن و اصولی هم بودن او وقت هست نبود فلسفه بیشتر به کلام و این ها بود به جهه منطبا فلسف به هر حال در اون ذهنیت خودشون هم سعی شد این مسئله رو به صورت قالب بندی در بیارن پس اولا به صورت فتاوا و موردی بود بعد بنا شد به صورت قالب بندی در بیارن تو قالب بندی که هم خب طبعا مسئولی های اختلاف کردن دیگه اختلاف اساسی در این قالب بندی بعدی بود تو این قالب بندی بعدی این اختلافات مثلا همون گفتن یا هر دو مثبتن یا هر دو منفین یا یکی مثبت یکی منفی این قالب‌هاش میشن سبب و حکم سبب مثل ان زهار و رقبه اگر زهار انجام دادی و اراقه تل مؤمنه و علیه اضرار مؤمنه یا قد سببشون یکی باشه یا سببشون دوتا باشه حکمشون یکی باشه مثلا هر دو وجوب باشن یا هر دو صحت باشن یا یکی وجود باشه که استحباق باشه تقریب فهمونی؟ نحوه تقیید به چه نحوی باشه؟ هی شروع کردن اینها رو یه قالب زدن که به صورت بحثای اصولی و بحثای کبروی در بیارن از اون جنبه های موردی خارج بشه من درس ارز کنم کرارم هر مسئلهی رو که موردی بررسی بکنید این میشه فقهی هر مسئلهی رو که کلی بررسیده میشه اصولی فرقش این طوره. همین مثال دم مسفوح رو که الان عرض کردم اگر بخویم به همین قاعده اصولی که مطلق بر مقیده میشه اصولی اما عقل آمد گفت نه اونجا که گفته دم مسفوح لا اجل و فی ما اوهیله محرم علی طعام نیته اما اینجا بحث اكله alat ta'am niyat ama لا یکون میته پس نسبت به عقل فقط دم مسفوح اون دقت بکنید نسبت به اکل فقط دم مصفو و اما حرم علیکن میتود دم این حرم معنی محرومیت این همه آثار رو میگیره اختصاص به اکل نداره نجاست هم توش هست مانعیت نماز هم توش هست غرمت بی هم توش هست وقتی انسان محروم شد همه هست دیگه پس بیاییم قائل بشیم که اونی که دم مصفوه مغیبه این اینالو خوردنشه این مال حلیت و حرمته اون که انما حرم علیکم میت مطلقه مال نجاسته مال مانعیت نمازه مال خرید و فروشه پس اصلا این دو تا بندیه رفض شدن جای هم متقبر مویید نیستن نکته هم متقبر مویید نداره اون یک وادیه اون مال عکله از کردم الان البته فقاهر ما از این راه وارد نشده اما این یک تفکیکی قائل بشیم بین عک یا شور بدن و بین بقیه احکامی که در شریعت مقدسه داره اون احکام مطلقه میخواد دم مصفوح باشه میخواد باشه قیل و فروش جایز نیست نمیدونم فرسون بیاریم که نجاست داره مانعیت نماز داره میخواد دم مصفوح باشه این دقتی الان شما دو روشی این مسئله نگاه کردیم. این دقتی کاره یه تا این گفت اینجا دمن مسحوهن قبلش نگاه نکردیم آیه رو نگاه نکردیم دمن مسحوهن حرم علیه مدده این رو گذشتیم با قالب اصولی تو شدیم صحیحه این رو کردیم بحث و اصولی یه دفعه قائله این تحلیلی که من کردم ارائه کردم ایراده نه بابا این مال اکل از این مال جافت دیگر این میشه موردی میشه فقهی پس همین آیه مبارکه با اینکه ظاهرش مطلق و مقیده از دو زاویه میشه بررسی کرد یک زاویه زاویه فقهیست یک زاویه زاویه و اصولیست مثلا آیه مبارکه فمسهو به وجوه کن و ایدی کن در باب تیمم گفتن خب چون تیمم بدل از وضوعه فخص رو کن و ایدی کن الال به وجود کن و ایدی کن پس این مرس جای غسل میگیره در نتیجه الیضو اون مشکل داشتن با پا چون پا میشون قسله حالا اون چی جوج جو مسری اورویی رو بس دیگه پس بنابر این همون جوری که در وضو صورت شسته میشه در تمام هم صورت مسح میشه همینشون که در وضو تا مرفق تا مرفق به اصطلاح در وضو شما دست رو میشورین در تیمم هم باید تا مرفر مس بکنی. بخش رو حجو ها کن ویدی اكم ال المرافق. ببین یک آیه در باب وضوء، یک آیه در باب تیممه. اینجا این معنی حمله مطلق بر موعید. مثلا فتوا میداد که آ تیمم تا چه میداد؟ در دست بود مس و گفت تا مرفر دلیلش چی بود؟ هم حمله مطلق بر مغیر. فقصل و وجوه هکم غیدی هکم الان مرافق اون این دوتا مس جای اون دوتا قصد در وضوع هستن در وضوع تا مرفق شسته می شد حالا هم که در تعمامه تا مرفق این بحث میشه بحث اصوبی اما اگر آمدیم گفتیم خیر، اینجا در اونجا داره فخص و وجوه کم، در قصد با یهورده و رضا تمام وجبات شسته بشه وم سهو به رهوس کن رأس در مقابل وجه آمده در زبان فارسی و در زبان عربی گاهی رأس بخصو میشه مراد اون مقدار است که از گردن از نهایت گردن به بالا رو میگن رأس گاهی هم رأس قسمتی است که مو داره و اون یه رأس نه موی ریش اون سر در اینجا به مقابله بین وجه مراد از قسم در اون قسمت که مو داره و لذا مثلا اهل سنت تمام صورت رو میشوین و تمام هم مصر میکنن به قدره مقابله یک مقدار از سر که گاهی سر به هر دو گفته میشه سر رو دو گفت میکنن یک قسمت شسته میشه یک قسمتش هم مصر میشه و لذا میمونه بحث معروفی که بین اونها بوده که ازونه این گوش ها از خودو میکیه آیا اینها جز سر هستن که مصر بشن یا اینها جزوه وجه هستن که شسته بشن چون یکیش قصد داره یکیش مصد داره و اصولا خب بصفقیه هم داره که آیا از این ظاهر آیه اونوالا که فهمیدی میشه که تمام این جارهه سر باید به لخری یک کاری بشه یک قسمتش باید کاملا شسته بشه یک قسمتش هم کاملا باید مصد بشه در هر دو قسمتش فتوای اصحاب ما این نیست حد در صورت هم میگن لازم نیست تمام صورت ولیزا میگن به مقدار ابغان یعنی طرح همونده یک انگوش دو انگوش مونده به بناگوش این مقدار واجبه اما طبق اون نظر تا بناگوش کسای هم که گوش رو از وجه میدونن میگن تا گوش هم باز شسته در روایات ما هم که در حال قضونان لیستتا من اشاره به اینه که شستن توش نیست البته این ببخشید لیستتا من از سر نیستن ولیزا در اونها مرس واجب نیست در اوزنه اصلا درست نیست مرس در اوزنه به گوش کردن درست نیست البته یک مطلب دیگه از دو ما در باب احرام اوزنه رو جزوه سر گرفتن مشغور بین فوق ها ولی کادر نیکونه اجمانه دایه اجمان شده اجماعی نیست اما خب کادر نیکون و لذا انسان یک کمی تحییر پیدا میکنه بی بکنه اون باب ووزو داره که علا اوزنه هم لی در باب احرام داره که اوزنان هم جزو رعص هم باید نخوشونه اون قسمتی که از سر در حال احرام نباید به خوشونه لئی سطحان رعص هم به نظرم داریم هر دوش داریم چون سنیا اوزنان هم محص می کنن از سر می دارن از رعص می دارن این اوزنان لئی سطحان رعص با اون مسئله یک فرقی داره که حالا جاش بحث فقهی نیست قرار اون یک نکته دیگه ای داره غیر از این نکته ای که از جزو جزوره اصلی و جزور اون یک جهت دیگه داره در باب احرام که حالا جاش کیف و ماکان خوب دقت بفرمایید این مسئله حمل مطلق بر مقید تو این تصورات اوشاش وقتی این مسئله فهم صحو به وجوه کن و ادی کوم اگر حمل مطلق بر مقید بکنیم میشه مسئله اصولی همین مساله ممکن است از راه دیگری وارد بشیم که داشتم صحبت رو خارج شده میکنم و اون این که فهمیدن طبعیز مال بایه قال منعین علم تندر مصم به وزره از قال مکان البا اصولاً بگیم با در لغت عرب این طوری خستتش. که طبعیزها تقریب بشه احتیاج به یک داره که جاش اینجا نیست و طبعیز نیست در حقیقتی است که لازمه طبعیزه و الله با دائمان به معنای همون اصاب میاد فرقی نبی کنید حالا آره این توضیحاتش جدیه که الان اینجا نیست وقت در آیه این باره که تموم صحو فمسهو به وجوه کن و ایدی کن هر دو با باره لذا از این آیه باره که واقعا نیست سنت فرقمبر به خوبی فهمیده میشه که مس به تمام وجه نیست به تمام یدم نیست پس ما حمله مطلق بر نمی کنیم اما این هم نکردن به قاعده مطلق مقید نشود، به خاطر با شد پس خوب دقت بکنید یه دفعه شما یک معنا رو نخواهی روی قالبهای معین در بیارید میشه اصول یه دفعه همون معنا رو نمیخواهی رو قالبهای معین در بیارید اون معنا رو موردی، تا به خاطر وجود بعضی خصوصیات در مورد میخیل اون معنا رو استظهار بکنه اون وقتی میشه فرق فرق بین فرق و اصول اینطوریه در مبحث مطلب و مقید انساب رضی از بعد از اینکه وارد اصول و بحث مسلکمین آمدن خیلی عقوار پیدا شد انسافا هم زیاد شد عقوالش به احتمالات و قالب بندی هایی که شده هم در میان اهل سنت و هم در میان علمای ما هم به اصطلاح هر چی بهتر در آمده سر کردن این باله ها رو اصلا تقسیمات رو بیشتر بکنن تا اینکه دقیق تر باشه و انصاف قضیه اینی که اگر ما بخوایم این بحث را من کشیزارها مطرح کردم دقیقا بررسی بکنیم انصافا موارد مطلق و مغایر در مجموعه ای ادله امام مثل قرآن و سنت یک نواخ نیستند. این مثالای اصولی تو کتابای اصول هست این تو ادله ما به این روشنی نیستن انزا عرضه فاحت رقبه تن انزا عرضه فاحت رقبه تن مؤمنه روایت اینطوری به این صراحت و به این روشنی نداریم مثل این مثالی که منم براتون زدم الا ان یکن اهل الله حرم الله ما حرم الله می و دم و الا ان یکن میت تن اصلا اونجا یک, جوره، اونجا یک جوره ولذا خیلی از این موارد ممکن است فقریان حل بشه نه اصولیان یعنی ممکن است ما یک قالب های اصولی درست بکنیم اما عملا وقتی در فقه بیاییم به درد فقه ما نخوره. یا عملا توی فقه مواردی رو پیدا میکنید با این قالب های معلوف و اصول نمیتونیم حلش بکنیم قابل حل نیست و انسان قضیه اگر بخاین یک کاری در سطح رسمی علمی امروز انجام بدیم و اول امروز در سطح آکادمیک این بهترین راهش اینه که انسان یک دوره کتب مفصل فقه اهل سنت مثل فقه در حدل مثال و مغنی قدامه رو نگاه بکنه از اول تا آخر در هر موردی که اختلافی بین فقهاشون منبعشون حند مطلق برمغید اونارو جدا بکنه اون بهترین راهش اینه بی این راههایی که ما دارین میبینین این خیلی به نتیجه نمیرسونه مواردش کاملا مختلفه چه در آیات کتابی چه در روایات و یک مقداری زیادی اختلاف سر این نیست که فقط لفظ سر جهات دیگری هم هست که الان یک اشاره کردم حالا وارده بحث بشیم یا باش تو بیم چی میشیم بله اونطورم داریم <تصفيق> ناعلوزن اونلیسه اونراس تو کتاب وسال شیعه داره ما داریم خودمون تو کتاب طهارت و داریم در خود وضو ما داریم غیر از اینکه اونها هم دارن اونها هم دو سه جور داره من واجب نه اسلام بنظر واجب لام دارن چرا البته یک چیزی هست یه مقداری منشون نمیخوام وارد این بحثا بشم یک مقداری اختلاف دارن که اصلا این حدیث مرفوع یا موقوف یا مقطوع یعنی کلام صحابیه یا کلام تابعینه یا كلام پیغمبره یه بحث اونجوری هم برن که جش اینجا نیست تو بحث وجود و تو بحث احرام مناسبه شونده است این که افماکان وارد بحث خود اون بشیم عرض شده این که تا اینجا که این مسئله یک مسئله سابقه و یک مسئله با ارزشی شیه انصافا و یکی از امهات بحث اصولیس که انصافا باید تنقیه و تصیح بشه توضیح داده بشه و اقتلاع وقوع هم در یکی دو تا روایت و یکی دو تا عبارات فقها نیست ابتلایو از قران شروع میشه توی مجموعه روایات هست و تو انواع مختلف هست چون از شد مطلقی رو که در اینجا ما به عنوان اصولی بررسی میکنیم این انواع متعدد داره گویا بلاوازی معنا مطلقا مقدمه مثل موسکه. و موشک و عناوین دیگه داره وقت مخصوصا اگر بهش اضافه بشه سببش مختلف بشه اضافه بشه حکمش مختلف بشه چیزی دیگه بشه اضافه بشه امور رو عوض میکنه و در کتاب تغییرات مرمو آزیان نوشه تتمتون یه حمله مطلق المقید در اینجا در بست دیگه انشالله کلمات مقرر باشه و الا انصافش اینه که اونهایی که تا حالا گفته شد و آزیان اینها مقادی بودن این خود مسئله هست اینکه تتمه هست این اصلا مسئله اساسیه در بابا مطلق مقید همین حمله م و موارد هم و مواردی که این هم درسته این راجع به این قسمت از کار و اما راجع به تاریخ مسئله هم روشن شد مسئله اختلاف انگیز از اهل صحابه به تابعین و فقها و تو وسائلم عرض کردم تو وسائلم من منو تو ذهنم بود از منو من داره لكن سندش به نظر خیلی نقی نباشه نه؟ محمد بن عبی این که خوبه محمد بن محمد باشه لیستا در لیستا باشه الان هم بود باشه غالبا چون ازله مؤنثا لیستا در الان کیف ماکن اسکن تو ذهن است اسم نر است تو ذهن است اما معذره در باب احرام گفتن از راسه همچنان که صدر از جایز نیست حت اوذن نوشتن جایزی اینجا دار نیست کاملا راسلا به در اوذن حالا این یک داره که چون جاش اینجا نیست حالا فرضاً استفراتن داره بابا ما این بحثش با جای خودش روشن میشه این تا اینجا راجع به این مسئله ای که مطرح شد تاریخش روشن شد احتیاج به این مسئله روشن شد و روشن هم شد که بیشترین قالب بندی ها برای اصولی آوردهن اما انصافا بیشتر قالب بندی ها بعد توسط متکلمین آمد و قالب بندی که ابتدا آن بود بیشتر این بود یا سببش دو تاس یا سببش یکی یا حکمش دو تاس یا حکمش یکی اون وقت مثلا سبب یعنی وزه ها حکم وجود و, و استحباب یا دو تاست، یا یکی یا هر دو مثبت یا هر دو منفی یا یکی مثبت مثلا یکی شاید دو میشه. یا مطلقاً مثبت یا مقید مصبته یکی مصبته یکی من که این تقسیم بندی ابتدایی بود که شد اما این تقسیم بندی بعد تحول پیدا کرد تو عالم اگه باشه همین تقسیم بندی بیشتر آمده اما این تحول پیدا کرد و که چون دیگه نمیخوایم اقوارات مرحوم استاد رو بخونیم یه اشاره فقط در اینجا در حد ایشون پدنسال لا نفسه از صفحه دویست و, و به احساب این چار, چار, چار که من دارم جلد پنجم عنوان باب این طوره حل یخمل المطلق و که در حقیقت این همون مسئله اساسی هست. مثلا مخواستم باز این طور بگم و هنها مسائل تقدمت جملتون منها در باب آم و خاص مشترکه و تون خواستتون بالمطلق و هیه هم مطلق عل المغیب وقتی ایشان دو جور یعنی تقسیم بندی و قالب بندی ایشان این جوره اول این یکون الحکم متعلقاً بالمطلق و نهوه صرف وجود مثل ارتقل قبلتن از ثانیه این یکون الحکم متعلقاً بیه علام مطلق الوجود از کدم ایشون مرحوم استاد در این نوشتهشون جای ما در درس نازشون ایشون گاهی تربیر میکردن صرف وجود کم بکاردن الوجود المطلق این الوجود المطلق مرادشون سرف وجود بود در مقابلش که وجود ساری باشه ایشون تعریف کردن که مستقل وجود انجام دادن الان مستقل وجود مراد ایشان از مستقل وجود وجود ساریه یعنی اصطلاحا اگر اون عنوان داره یک فرد واحد، فرد دیگه نداره اینو صرف وجود میگن اگر قابل تکرار افرادش رو وجود ساری میگن مثل اكمل عالم بعدد هر عالمی اکرام متعدد بشه اما مثل جعنی به یعنی یک مرحله که آورد امتصال بارد. امتصال به نحو صرف وجوده بعد ایشون فرمودن مثل اهل الله و ان الحكم فی یعنی حل و انحلال افراد متعلبه انحلال خوش نداره ایشون فرموده بعد ایشون فرمودن اگر صرف الوجود باشه باز ایشون فرمودن تا را مقید مخالفه تا مخالف موافره همج شروع کردن به ساز سوره مساله رو شهر دادن که آئون مراجعه کنن و در عده از اون مواردشم ایشون اشکال فرموده که مثلا این مطلب درست نیست این مطلبی که هست ها. بعد مسئلهی مسئله که در میان اصولیین ما خیلی روش کار شده اصول مترخیر تعدد مطلوب و وحدت مطلوبه. یعنی مسئله وحد مطلوب و تعدد مطلوب در مطلوب نقش بازی میکنه. نقش اساسی. بعدم ایشون وارد بحث برده. تعداد مکتوب و بحث مکتوب شدن که دیگه مفصل این برده. تا صفحه 379 بله ببخشید تا صفحه 380 از 380 وجود ساری رو بحث کردند و هم مقام ثانی و هو ما اذا کان الحكم متعللا بمتلق الوجود بعض در اونجا هم همینطور تا دلیل مخالفه در اینجا و صرف تا را موافقه الی نحوه ورود مرحوم استاد اینه مرحوم ناینی یه دیگه مرحوم آذیا دیگه یکی اینا ایک رو بخوام بگم هم وقتی شما رو میگم وقتی خودم خیلی محصل تمامی نداره خودم خودشم مراجعه کنم فقط مثلا فهرستوار اشاره بکنم که چطور این مسئله در طول تاریخ قالب‌هاش عوض شد و اینم به نحوه اجمال عرض بکنم این قالب‌های ایران که آدینجا آوردن همش واقعیت نداره مثال نیست ما این که ما در شریعت موارد داریم که باز با این قالب ها نمیخوره نه اون بحث فقه. هیچ با این اصول تمام میشه و نه بحث اصولش کارایی تمام در فقه داره این البته در کل اصول ما هست یعنی این باز که شما یک دوره کتاب کفایره با مثال بخونید حتی با اجتهادی و با ادله و اینها باز وقتی میرید تو فقه میبینید به اون مقدار اصول نمیتونید فقه حل بکنید یک مشکلی ما اصولا به لحاظ علمی داریم که این اصول ما با فقه ما خیلی تطابق نداره خیلی با هم دیگه همسانی نداره همخوانی نداره ممکن است یه دور و اصول متعارف و آدم بیاد دیگه واسه تو که برو گیر بکنه یه فکر اساسی تری برای فقه بکنه هم برای کلیه فقه و هم برای فقه شیعه برخصوص که وقتی کسی یه دور و اصول خون ما به نظر اونه که یه دور و اصول خون بتونه وارد فقه بشه بتونه اون قسمت‌هایی که مربوط به اصول و کلیه و حتی خیلی از جزئیاتش رو به فقهیاتش یاد داشته باشه بتونه وارد بشه این به نظر من از همه مهم‌تره اینجور بحثا بیشتر جنبه خطی داره و ترتیب اثر عملی نداره ترتیب اثر عملیشم دین این چی گفتیم که خیلی هم سخته آدم از اول مغنی ابن قدامه رو بگیره تا آخر دوره فقه اهل سنت نگاه کنه کجا فقهاش سر حمل متعارف موقع با هم اخلاق کردن تمام این موارد استخراج بکنه وقت ببینه با شواهدی که داره آیا واقعا حق با کسانی است که حمل متعارف م하였다 نه کرده این کار بشه کار علمی امروز در اصلاح امروز در فقه ما هم فرضون جواهر یک دوره جواهر بگیره موارد حمل و مطرب موارد مشخص بکنه اون وقت ببینید میتونه کاری بکنه این بهترین راه اینه این نوشتن خیلی به مطلوب نمیرسون خب برگردیم به بحث خودمون ارث رو در اول به صورت فقهی و فتاوا بود بعد استاد خالق های اصولی در آمد که انصافا متکلمین نقش بزرگی در این داشتن بعدم که خب اصطلاحات فلسفی و تفکلات فلسفی تو اصول طبام سعی کردم قالب های شکل های و جمع با به قول خودشون بگیره که ما عده از این قالب ها رو بهش اشاره بود این یک قسمت از بحث و اساس بحث بحث دومی که در این جای راجع به این بحث مطلق و مقایت خیلی دارای اهمیته اون این است که طبیعت این بحث رو همینطور که عدهشون نوشتن یک طبیعت بحث لفظی داره یعنی زاویه بحث گرای بحث گرای لفظیه که وقتی گفت اعتق رقبتن گفت اعتق رقبتن مؤمنه دم الدم و دم من مسفوها این ظهورات لفظیش این طور میکنه که مطلق رو بگیم اون دمی که فرمود حرمه علیكم دم این دم مسفوها یعنی طبیعت بحث رو یک طبیعت لفظی خرد و نظام تو بحث مباحث الفاظ ده کرده صدرش انصاف قضیه بحث به همین مسئله لحظی حل نمیشه اینه هست یعنی در خلال بحث ادهی از موارد که هم به مطلق و مغیل آمد چیزای دیگری هم بهش اضافه شد اینطور نبود که بحث فقط مطمحز بشه توی بحث مطلق و مغیل یعنی ما در بعضی از جاها غیر از قاضی مل هم مطلبر موقع چیز دیگه هم نظر بگیریم مثلا لا اجر الا له ان میکنه دمن مسفوها این رو بحث بر این مقتنی کردن که این مبنی نیست بر حجیت مفهوم وصف اگر قاعده به حجیت مفهوم وصف باشیم اون وقت مقید میشه اگر نباشیم که نه مطلق مطلبر موقع درست کردیم پس عکس می‌کنیم به اطلاق حرم علیکم و دم. شما باید بگین دمن هم. این مسفوح به اصطلاح قیده وصفه. باید قائل مفهوم وصف بشیم. یعنی حکم برای در مسفوح هست، برای غیر مسفوح نیست. اگر قائل شیدین، اون وقت تنافی پیدا میکنه با حرم علیکم البیتا در. اگر گفتیم ما مفهوم وصف قائل نیستیم، دیگه جای هم متعبر نخواهد نیست. پس این مسئله غیر از زاویه کلاغذی خودش، یک زوایای دیگه هم پیدا کرد. اینطور نیست که این مسئله کلاً و اساسا به مسئله لفظی خودش همده مطلق بر مقاید هم بشه، عمل بشه یک نکته دیگری هم داره مجموعه نکاتی که در مسئله هم مطلق بر مقاید هست اینه یک همین مسئله مفهوم وعص این مسئله تأثیر مفهوم وعص هم در کلمات ما آمده محروم ها با هم ایک هم در کلمات علماء سنی از قدیم هم آمده که مقیّد بودن این و تقیید مبنی است بر مفهوم وسر اگر مفهوم وسر قابل نبودیم مطلقاً مآید مترایند پس یک مسئله زمینی در اینجا کارگشا بوده برای آیان مسئله مطلق مسئله به اصطلاح مفهوم وسر مسئله دوم که این کارگشا بوده البته از اولام بوده و اخیرا شکل دیگری پیش ما پیدا کرده نحوه اعتبارات قانونیه مثلا سلاموندن گفتن اگر این اعتبارات قانونی به نحو الزامی و لزوم باشه مطلقاً هم در مقتضیت میکنیم. اما اگر همین اعتبار قانونی غیر الزامی باشه مطلقاً هم در مقتضیت نمی‌کنه مستحبات مکروحات مستحبات در مستحبات هم مطلقاً بر مقتضیت میکنیم. پس یک محث اعتبارات قانونی را توی بحث داخل کردن مثلا اگر در روایت آمد علی که به صلات و لو رکعته در واقع اون 11 رکعت نمی‌گیم علی که به صلات لیل مطلق همینشون بر یازده. نه. هم هم هم 11 نه میگیم مراتب دور کات مستحبش حرکت مستحبش 6 قدم مستحب نهایت استفوابش 11 حرکت 20 تا هم خون خوبه 50 تا هم خون خوبه نهایت از سجاست 1000 تا این این صلات لیل که سنت پیغمبر 11 رکعت بود این 11 رکعت در اینجا حمله مطلق و معیّن نمی‌شه میگیم فقط همین مستحب به ایشون مستحب نیست پس یک بحثی که باز مطرح شد، بیر از جنبه لفظی، بحث نحوه اعتبارات قانونی. سومین نکته ای که خیلی تأثیر داره تو بحث مطلق مقید، البته در فقه اسلامی و در اصول اسلامی و در اصول شیعه تأثیر نداشت، مسئله حجیت قیاس بود. چرا چون اهل سنت قیاس دارشون راحت بود دیگر قیاس قبول داشته سر قبول قیاس همی که از عدلشون فعتبرو روی اولیل افسار بود کلمه اعتبار که در فارسی هم ما الان بکار بین معتبر و معتبر و اعتبار این اعتبار اصلش از ماده و عبوره فعتبرو یعنی حکم که یک موضوع تعلق بیدا کرده عبور کنی موضوعاتی که مشابه اونم اونم این حکم میگیره پس قیاس یک نوع عبوره یک نوع اعتباره. علما گاهلایی هم تو عبارت اونها به جای قیاس اعتبار و حسب الاعتبار اعتبار مرادشون قیاسه بخ اونا چون قیاس پیشون سهل آسان بود جا افتاده بود بعضی از موارد حمل مطلق بر موعد وردن که اینا شما الان جزء مطلق موعد نمیتونید مثل مثلا کفاره قتل الان برای شما داد با کفاره زهار. شما شماها اینا رو مطلق موعد نمیدین کفاره احثار محرم با کفاره ذها درست خصال کفاره در هر دو یکی است. اما در قرآن کریم راجعه به کفاره زهار ترتیبه در اون چی که از پیغمبر نقش شده معروفش ترتیب نیست به نظرم ترتیب هم نقش شده معروفش ترتیب نیست در مقام عمل پیغمبر سه اول اطفا بعد اطعام بعد سم یا بعد سم بعد اطعام من یادم رفته اون وقت این دقت بکنید پس شما شاید تعجب بکنید میگید آیا چرا روایت کفاره افتار رو بعد آیه زهار هم نکنید این قیاس پیش اهل سنت راحت بود مشکل نبود <تصفيق> یعنی نهایتش میگوی این قیاس با قیاس باشه قیاسم پیش مقبود <تصفيق> ارز کردیم در کفاره قتل عمد در قرآن کریم اطق رقبه آمده اما اطعام نیامده در کفاره زهار اطعام آمده در اطوی بعد از اطم آمدن گفتن در قتل عمدم اول اطم اگر نتوانست اطعام و خب اطعام در قرآن نیامده خب تو کفاره زهار آم شما به نظر شما جوابش خیلی واضحه زهار چرا که دقیق داره با زهار کجا با به قتل کجا چرا تو با هم دیگه داره اونا برای شد این به هم نره لذا خوب دقت بکنید عده ای از مثال ها و موارد که اهل سنت این رو از حمله مطلق بر مقیّد گرفتن این باید به سر معیار قیاس میشه. و اگر قیاس تو زمینه نشه اصلا جز مطلق و به نظر ما نیه. و خوب دقت بفرمایید. من سابقاً کراره اموز نشد ارز کنم. سابقاً کرار ارز کنم. اون مسائل حجت که برمی گرده مسائل اینها این مسائل تبیس مثلا قیاس حجت اشما حجت فلان این مسائل حبیعتشون اختلافات مذهبی داره. چون از زمان صحابه شد مثلا آمر می گفت به قیاس برگرم حلیه بدمیم لذا شیعانه امیرالمومنی اینجور قارش شدن شیعانه اون یکی پیرامون گی اونجور قائل شدن اگه می‌فهمی مسائلی که بر می‌گرده به مصادره تشریح اینا قائلن مذهبیه یعنی اختلاف بین مذاهبه اما مسائلی که به ظهورات برمیگرده، مثلا مثل ظهور سیره فل در وجود اینا غالباً مذهبی نیست یعنی مثلا ممکنه در احناف ده تا شون قائل بودن که از در وجود ده تا شون در, در شافه همینطور بینه فرایانه سنن بینه فرایشیان اینطور یک از علمای شیعه ظاهرا در وجوب دیگه این مشکل نداره لازمش هر کی گفت بف... مثلا ظاهرا در وجوب شیعه است هر کی گفت صحابه سنی, سنی. این چیزی نداری اما توی این بحث مطلقاً غیر چون بعضی از مواردش قیاسه خوب دقت بگو اونجا بر برمیگرده مسئله دیگه از مسئله اختلاف رائے خارج می به اختلاف مذهب برمیگرده این ظرافت کار خوب دقت کن ما غالباً در مسئله حمد مطلق بر مقید با اهل سنت اختلاف رائے داریم غالباً چرا تا, تا کجا تا جایی که مسئله لحظیه ممکنه یه فقیه ما میگه هم میشه یه فقیه ما میگه هم حمد نمیشه فقیه اهل سنت هم میگه هم میشه این میگه هم اما تا رسید یک جایی که جنبه قیاس داره اونجا از هم جدا میشه کفاره زهار رو با کفاره غصب از هم دیگه جدا میشیم. چرا تو ما در قیاس از هم جدا شده. این دو طرح خوب دقت بفرمایید پس مسئله حمله مطلق برمقید به ها اختلاف در رعیه نه اختلاف در مذهب اما در مواردی اونها توی حمله مطلق برمقید به زنیمه قیاس گرفته خواهی نخواهی اونجایی که پای قیاس تو کار در میاد میشه اختلاف در مذهب یعنی ما کلن با آنها مخالفیم تا وقتی که قصه لفظیز و ظهورات میشه با هم روی کارش بکنیم اما تا رفتن مساله قیاس و مذهب دیگه با هم کلا مخالفیم و صلی الله علی محمد باط